آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یارب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد هر دلی از حلقهی در ذکر یارب یارب است کشته چاه زنختان تو هم که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر تو قبغقو است. شاه سوار من که ماه آینه دار روی اوست تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. عکس خی بر آرزش بین کاف تاب گرم رو در هوای آن عرق تا هست هر روزش تبع. عکس خیبر آرزشوین کافتاب گرم رو در هوای آن عرق هست هر روزش تب است من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین با سلیمان چون برانم من که مورم مرکبه است آن ناوک بر دل من زیر چشمی میزند قوت جان حافظش در خنده زیر لب است آب حیوانش زمنقار بلاغت میچکد زاغ کل که من بنامیزد چه عالی مشربه است